درود شنوندگان و هموطنان عزیز فرشید Nasrullahi هستم اناوین خبری مربوط به پناهندگان در هفته گذشت رو به سمع شما میرسانم با رادیو همراه باشید دو کارمند سفارت سوئد در تهران به اتهام تخلف در صدور ویزا از کار برکنار شدند سفیه کالبری مدیر رسانهی وزارت خارجه در گفتگو با رادیو سوئد این خبر را اعلام کرد و گفت ما به این موضوع با جدیت نگاه می کنیم بررسی اتهامات این دو نفر از تابستان امسال آغاز شده و آنها از کار برکنار شدند. مدیر رسانهی وزارت خارجه بیشتر از این توضیح نمی دهد و می گوید ما وارد جزئیات نمی شویم چرا که ممکن است به روند تقاط آسیب برساند. مدیر رسانه وزارت خارجه در درباره این موضوع اظهار نظرات و حرف هایی که در رسانه ها گفته توضیح نداد خبر بعدی از ترکیه ترکیه با پذیرش پناهجویان از یونان توافق کرده بر اساس گزارش رسانه ها ترکیه با بازگشت مهاجران از مناطق خشک یونان توافق کرده وزارت داخلی یونان اعلام کرد که شمار زیادی از این مهاجران تا 48 ساعت از جزایر شرقی ارژه به مناطق خشک انتقال می‌یابند. چنانچه روزنامه یونانی کاترمنی روز شنبه گزارش داده، هر دو کشور ترکیه یونان در دیدار دو روزه رجبات تییب‌اردغان رای جمهوری ترکیه از یونان در مورد موارد تدبیری برای بازگشت مهاجران از یونان با هم به توافق رسیدند هدف این است که شمار مهاجرین در کمپ‌های بسیار پر در جزایر شرقی کاهش یابد روزنامه یونانی گزارش داده که این تدابیر زمینه توافق قبلی است که بر اساس آن ترکیه در چارچوب نامه با اتحادیه اروپا مهاجران را از جزایر یونانی می‌پذیرند که قبل از آن از ترکیه به یونان آمده بودند حکومت یونان تا کنون در این رابطه و این موضوع به پرسش خبرنگاران فرانسه که از او سوال کرده بودند جوابی نداد در همین حال وزارت داخلی یونان اعلام کرده که کمپ های پر از مهاجران را در شرق اژه ظرف 48 ساعت تخلیه می کند و به این ترتیب 480 مهاجر را به مناطق خوشبت جزیره کرت انتقال می داد. رادیو دولتی یونان این خبر را به روز یک گزارش گزارش داد قرار است قبل از پایان سال حدود پنج هزار مهاجر به مراتق خشک انتقال داد آن. حکومت یونان روز یکشنبه این اطلاعات را نتعید و نرد کرده اما گفته که در دیدار میان اردوغان و سیپراس روی تدابیری برای بهبوده همکاری با در بحران مهاجرین توافق صورت گرفته. روشن نیست که آیا اتحادیه اروپا درباره این تر اطلاع یافته یا نه. نامه مهاجرین میان اتحادیه اروپا و ترکیه که در ماه مارس سال 2016 تصویب شد، در نظر دارد که همه مهاجرانی که از ترکیه به شرق اروپا رسیده‌اند دوباره به ترکیه برگشت داده شوند. البته در صورتی که تقاضای پناهندگی‌شان در یونان قبول نشود یونان پیش از این در ماه نوامبر سال جاری 2052 را از این جزیره جزایر به مناطق خشک کشور انتقال داد در همین مدت 3850 پناهجوی جدید از ترکیه به جزایر یونانی رسیدند یک خبر درناک از سوئد محمود علیزاده یک نوجوان افغان که به عنوان پناهجوی تازه به سوئد آمده بود در جلوی چشمان هم ها و هم هایش توسط دانش آموز 16 ساله دیگری در همین مدرسه با چاقو به قتل رسید متهم به قتل نیز دارای پیشینه مهاجری است و گفته می شود که از 12 سالگی دارای سابقه جرم بوده است محمد که خود را 17 سال معرفی کرده بود در سال 2015 از ایران به سوئد آمد و در این کشور اقامت گرفت او که همواره از اخراج شدن به کشور افغانستان که از نظر او ناعم بود میترسید در پایتخت سوئد به قتل رسید محمود علیزاده که خود را با سختی زیاد موفق به دریافت اجازه اقامت در سوئد شده بود تا از اخراج به افغانستان نجات یابد در تظاهرات اعتراضی به اخراج به افغانستان در استکهلم نیز فعال بود این پناهجوی به قدر رسیده در تلاش بود تا خانواده خود را نیز از ایران به سوید بیاورد اما قبل از اینکه تلاشش به نتیجه ای برسد روز چهارشنبه در مدرسهش در مقابل چشمان همکلاسیانش با ضربه چاقو به قتل رسید بعدی سرخرمن دولت سبز سوسیال دموکرات و اخراج متقاضیان پناهندگی افغان از فرودگاه سوئد به کابل اخراج اتباع افغانستان از سوئد که اکثرا از مردان جوان تشکیل شدهاند در حالی صورت می گیرد که دولت سبز سوسیال دموکرات از یک سو با ارائه پیشنهادی که قرار است تا از تابستان سال آینده به اجرا درآید وعده داده که این نوجوانان در صورت اتمام دوره دبیرستان و یافتن کار امکان دریافت اقامت در سوئد را خواهند داشت. و از یک سو نیست تاکید کرده که روند اخراج به افغانستان نه تنها متوقف نمی شود بلکه روند آن تشدید نیز خواهد شد سوشیال دموکرات از یک سو تلاش می کند ماسک سوسیالیسی و دفاع از حقوق بشر در واقع دولت سبز بشری خود را حفظ کند و از سوی دیگر رای دهندگان خشبینی را رازی نکند که از سیاست پناهندگی سالهای اخیر سوئد شدیدا ناراضی هند. و در طیف هرچه چه به احزاب مخالف می سیاست سیاست کجدار و مریض و البته ضد و نقیزی که برای بسیاری قابل فهم و درک نیست بسیاری از متقاضیان پناهندگی را ترغیب به زندگی مخفی خواهد کرد تا شاید بتوانند در تابستان سال آینده مشمول قانونی شوند که هنوز حتی به تصفیه پارلمان نرسید است بنابر آخرین اطلاعات موجود 28 نفر در بازداشتگاه اداره مهاجرت در استروب در جنوب سوئد در مالمو در انتظار اخراج از سوئد به سر میبرن که همه آنها از اطبای افغانستان هستند. آخرین خبر از بنگلادش سیل ورود اقلیت مسلمان روهینگیا از میانمار به بنگلادش ادامه دارد. طبق گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت از ماه اوت تا کنون بیش از 600 هزار نفر از مسلمانان اقلیت روهینگیا وارد بنگلادش شدند یونیسف میگوید که 60 درصد این پناهجویان را کودکان تشکیل می‌دهند اکثر این کودکان دچار تغذیه هستند و آثار رنج در چهرهشان مشهود است گذرنامه مرزی آجون پیارا نوار بسیار باریکی به پهنای چند متر است سیل پناهجویان روهینگیا در انتظار ورود به اردوگاه های پناهجویان در بنگلادش به این گذرگاه سرازی شدند. از, از زمان آغاز درگیری‌های مسلحانه میان مسلمانان روهینگیا و ارتش میانبار در ماه اوت سال 2017 میلادی این گذرگاه محل عبور هزار نفر از پناجویان بوده است. سیل همبوه پناهجویان برای ورود به بنگلادش از رودخانه مرزی ناف عبور سازمان غیردولتی برای رویارویی با این افراد استراتژیهایشان را تقویت کردند. به محض عبور پناهجویان از مرز تیم های سیار سازمان غیردولتی با آب و غذا و کمک های به کمک پناهجویان میشه دابن. گاهی چند روز طول میکشد که مقامات دولتی اجازه ورود تازه واردان را به اردوگاه بدهند. بدد لباتون خندون دلاتون شاد حدود پایدار و سفره پر باد عزیزم.